عشم و عشم آشم يتا احو. احو و هو استی، او استی، او احمایی، یاد و هیشتایی آشم. یت و اش شاو چید هچاو و انگه اوش دزداو من انگهو شیاو تنناو انگه اوش مزدای چاو احورایاو یم درگو بیو ددت واس دارم ینگه هاتام، ینجه هاتام، آتیس نه پایی ونجو، مزداو آهوراو، ویتاو اشاو تچاو، یاونگهام چاو، تانس چاو، تاوس چاو، یازمایده.